در نیست، راه نیست شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب ما بیرون زمانی استاده ایم با دشنه تلخی در گرده من هیچ کس با هیچ کس سخن نمیگوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است در مردگان خیش نظر میبندیم با طرح خندهی و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده ای.